گفتار چهارم در باره سکولاریته در پرهنگ ایران در پرهنگ اصیل ایران فقط به یک مرجع است که گوش داده می شود و اون بهمن یا بهومن یا حخامن است که اندیمن یا هندیمن هم خوانده می شود چرا اندی من و هندی من خوانده می شود چون اندی من یعنی تخم درون تخم یعنی مینوی مینو یعنی ارکه بهمن ارکه دنیا بود ارکه امروز هم ارکه میگوییم قلعهی درون قلعه یعنی اون چه ذمیری ترین درونی ترین چیزهای انسان است انده در اصل به معنای تخم است در عربی این کلمه تبدیل به هنده شده است که به گندم گفته می شود. دانه گندم هند هنوز در کردی به معنای زهدان است به من آسنخرد آسان است این خرد چی بود؟ خرد بنیادی آفریننده و سامانده و به هم پیونده است که در درون ژرف هر انسانی هست ببینید این تصویر به کلی با تصویری که ها از بهمن می‌دهند فرق دارد اونها بهمن از بهمن یک تصویری ویژه خود درست کردند که هماهنگی با آموزه زردوش داشته باشد اون فرهنگ اصلی را تحریف کردند. فرهنگ اصلی یه ایران چنین بهمنی بوده است بهمن محرمترین و سمیمیترین بخشهای ار انسانی به انسان است واژه اندرون در اندرون دل من در خستم خستم ندانم کیست این از در اندرون من خوغا میکند کی خوغا میکند این بهمن است اند همین, با همین اند شروع شد رون یعنی به سوی به سوی تخت به سوی اصل به سوی اصلی ترین محرم ترین سمیمی ترین بخش ما بهمن در شاهنامه میبینیم که نگهبان حکومت است یعنی چی یعنی خردی سا و آپریننده که در همه انسان‌هاست اینها با هم نگهبان حکومت است این به کلی با معناش با حکومت سلطنتی و اینها فرق دارد این فرهنگ این مردم ایران است این را بعدش چه تحریفاتی دنها داده اند؟ این جداگانه است آدم باید فرهنگ خودش را بشناسد به اطرف مردم ترابیده است و بعدش این تحریفاتی که قدرتها ها با آن داده سکولاریته در فرهنگ ایران با این آغاز می شود که مرجع حکومت اصل ساماندهی اجتماع خردی است که در درون خود هر فردی هر فردی است و اصل خود جوش یا زهشی یا به قول فلسفه قرب ایمانند و, و به قول عرب ها و به اصطلاح فارسی زهشی یا جهشی است زهشی یعنی زائدانه از خود انسان پیدایش مییابد از خود این مرجع از خود انسان باید زاده بشود. کی به چیست؟ باید در این صحبت کنیم این خرد بنیادی رو آسان خرد مینامیدند. می آسان این سان سن همون سنگ مصر. آسان همون واژه سنگ است. این واژه سنگ که امروز به ما بیشتر معنای سختی میدهد در اصل معنای امتزاج و اتصال دو کس یا دو چیز یا دو نیرو با هم داشته است حتی همخوابی را با هم سنگ میگفتند در سجستانی سنگک یعنی زهدان نان سنگک هم همین معنا دارد یعنی نانی که در تنور تنور این همانی با زهدان داشته است در تنور پخته می شود آسنخرت خرد سنگیست یعنی است که در پی دادن می آفریند. سنتز می کند سینرگی می کند و می آفریند یعنی است که در سنتز کردن در پیوند دادن اجزای دنیا به دیگر در پیوند دادن تجربیات به دیگر می آفرینند در فرهنگ ایران خرد هم مانند سایر نیروهای آفریننده جفت بود دو چیز جو که با هم جفتن مثل دو تا اسبی که یک ارابه را میکشان حرکت میداد اینها با هم آفریننده این است که جفت بهمن سروش است جفت آسنخرد گوش سرود خرد است خردی که با گوشش سرود را میشرود بهمن خرد ضد خشم بود یعنی چی ضد قهر ضد جنگ ضد تجاوزگری ضد خشونت ببینید این تفاوت خرد با عقل در اروپا و در اسلام است خرد در پرهنگ ایران در ذاتش ضد قهر و ضد جنگ و ضد تجاوزگری و ضد خشونت است این به کلی با عقل فرق از این رو نگهبانی و نگهداری کار بهمن است نگهبانی و نگهداری درست نگهبانی جان و خرد هر انسانی از آزار و گذند است یعنی از قهر از هر چه میز است از هر چه جنگ است از هر چه تجاوزگری است از هر چه خشونت است انسان رو دور می‌دارد یا انسان رو محافظت می‌کند این بهمن نگهبان از تجاوز هاش می این را ستم میگفتن این است که بهمن باید فرمان برای دورداشتن گزند و آزار بدهد هر کسی فرمان نمیداد این از این خرد درونی انسان که نگهبان جان و خرد است فقط حق فرمان دادن داشت و معنای اصلی فرمان چیست معنای اصلی فرمان اندیشه است سرود است رای زنی است. من در اینباره سپس به طور گسترده سخن خواهم گفت معنای اصلی فرمان چیست فرمان در اصل به معنای حکم و امر دستور نبوده است بعدا بدین معانی تحریف شده است سروش چیست؟ سروش از این جرف های اندرون هر انسانی یعنی از این خرد بونیادی که در جرف انسان است، در بن هر انسانش، سروش و اندیشه رعی بهمن خرد آفریننده و سامنده رو میشنود و آهسته در پیش آگاه بود در گوش ما زمزمه میمید سروش اهل زمزمه است در سهرگاه وجود ما در سهرگاه آهگاهی ما خبر را می آورد سروش از دو واجه ترکیب شده است از سرو و اوش, اوش. اوشه سرو که پیشوندش است به معنای شاخ است هرن که آلت بادی موسیقی است به نی هم میگفتن اوش اوشه پسوندش همون هوش ماس به گاه سحر هنگام بیدار شدن اوشینگاه میگویند سروش درست خدای همین گاه و زمان است با رشد با جفتند دوتا با هم جفتند مامای زایش روزند آباهی سروش بوق خشدار و بیدارباش خطر زندگی را میسند معنیش اینه. در داستان کیومرس در شاهنامه کیومرس از توتعه قتل خود به وسیله احرامن بیخبر است آگاهی ندارد این سروش است که این خبر را به سیامک به پسرش میرساند و در گوش او زمزمه میکند تا از جان کیومرس دفاع کند این سروش است که خبر توطعه برادران فریدون را به همین ترتیب به فریدون میرساند تا از خطر غزند به زندگیش به موقع آگاه بشود البته شروش تنها شیپور بیدارباش چه آگاهی نیست بلکه آسن خرد در انسان سامانده امور است و آسن خرد خردی است که بر ضد قهر و تجاوز و خشونت است ببینید فرهنگ ایران در بنیادش بر ضد جهاد بر ضد جنگ بر ضد قهر، بر ضد تجاوز بوده خردش این ویژگی ذاتی را دارد فرهنگ ایران بر ضد جهاد مقدس است هر اندیشهای که تحمیل بشود بر ترس تحمیل بشود این بر ضد بهمن است این بود که فقط و فقط در هر رزمی که اجب... به اجوار انسان برای دفع گزند می کند و از, از رزم میپرهیزد پرهیزد رزم... جنگ برای ایرانی همیشه معنای پرهیز از رزم رزم پرهیز داشته در رزم از رزم می پرهیزد. این تراجدیه فرهنگ ایران است چگونه میشود جنگید و از جنگ پریزی خوب در این بیاندیشید این از بزرگترین مسائل روانی در فرهنگ ایران بوده است این است که کیومرس در مسئله قتل سیامک به وسیله اهریمن نمیداند چه کار میکند یک سال مینشیند و سوگواری میکند چون جنگیدن یعنی تجاوز و خشونت و قهر برای از خرد بهمنه او ناپسند است این است که تصمیم گیری برای العاده مشکل است خوب ما در همین زمینه بیاندیشیم ببینیم که در رضم چگونه برزمیم که از رد برهیز کنیم در جنگ از جنگ بپرهیزیم خوب با دقت در این معذل بنشینیم بیاندیشیم خیلی مسئله ژرفی که بزرگترین تراژدیهای فرهنگ ایران رو نشان میده چون اهریمن هم اهل خوده است مثل اسلام و هم کارش آزردن و جنگیدن است اصلا خیشگاری اهریمن جهاد است، جنگ است. این است که کیومرز نمیداند چه کار باید بکنه تا آنکه که سروش نخستین فرمان را در چاهنامه می آورد این خیلی اهمیت دارد این نخستین فرمان یعنی بون وریشه هر فرمانی درود آوریدش خجست سروش این بیش مخروش و بازارهوش سپه ساز و برکش به فرمان من سپه بساد و به فرمان من برخیش براور یکی گرد از آن انجمن از آن بد کنش دیو روی زمین بپرداد و پردخته کن دل زکین اینجا نقطه حساس باز میاد بپرداد روی زمین را از دیب بپرداد پاک کن ولی پردخته کن دل زکین پس از این دل را از کین پاک کن این نخستین فرمان در شاهنمه است انسان به فرمان سروش که اصل ضد خشم است به جنگ می روید. تا روی زمین را رو از اصل جنگ بپردازد از اصل خوده بپردازد اهریاً یکی اصل خود است کنگ باژگوون زدن است یکی اصل جنگ و جهاد است و درست کار ایرانی به فرمان این است که بر ضد این دو به جنگ هست. ولی به شرط آنکه سپس دل را از کین ورزی پاک و خالی کن. این تصویر اصلی سروش تصویری است که در آن انسان حق سرکشی در مقابل هر فرمانی هر حکمی هر حکومتی دارد چون که هر حکومتی بر پایه حکم و احکام بنا شده است انسان حق سرکشی در مقابل هر حکمتی دارد هر حکمتی خوده است که مقدس شده است شر ایست که در خیر پوشانیده شده است انسان بر ضد حکمت بر ضد حکومت بر ضد حکم بر ضد حاکم سرکشی میکند بر ضد هر فرمانی سرکشی میکند که از اندرون خودش از بهمن درون خودش برنخواسته باشه این بود که جوامعی که پیرو خدای سروش بودند رهبر و پیشباه نمی پذیرفتند به قول مشهور جامعه بیسر بیسرور بودند شاه نمی اینها فرهنگ ایران است. اینقدر به دوم به تاریخ نچسبید تاریخ قدرت ها تمام فرهنگ ایران رو زیر و زبر کردن تاریخ مرجع ما نیست تاریخ میدان قدرت هاست اونجاست که بلندگوی تحریفات خود را در دست را فرهنگ ما اینهاست از جمله این جوامه جامعه سام و زال و رستم در سیستان بود که معتقد به سروش بودن یعنی چه؟ یعنی به این که هر فردی سروش خودش را دارد هر فردی سروش خودش را دارد که اندیشه و تصمیم را از بهمن درون خودش میگیرد مرجع تصمیم و اندیشه در هر کاری آگاهیست که سروش هر فردی به او میدهد نه مرجع خارجی این؟ بزرگترین ایده آزادی خواهی در فرهنگ در فرهنگ این این فرهنگ ایران حامله به این بزرگترین پیام آزادی است خوب میپرسیم این آزادی فردی انسان این خرد مستقل که مرجع نهایی هر تصمیم و هر این اصل آزادی چه شد کجا رفت در تاریخ ما در زیرو زبرهای تاریخ دنبال این میگردیم و نه چیزی پیدا نمی‌کنیم، همش بارونش رو پیدا می‌کنیم. اون وقت به این بارونش اعتماد به نفسمون رو از دست می دهیم. خیال می‌کنیم اینها فرهنگ ماست. اینها ضد فرهنگ ماست. اون چه در تاریخ ما هست ضد فرهنگ ماست. پاسخ این رو زود می توانیم. الهیات زرد و این چنین سروشی را نپذیرد، تصویری دیگر از سروش ساخت و خط بوتلان روی این مرجعیت نهایی خرد فردی انسان کشید اصلا سروش را به این معنا در مرکز توجه و مرکز ایدو... تیولوجیش قرار نداد سروش در ایران قابل مقایسه با جبریل اسلامی و روح القدس مسیحی نیست. اون از الله برای محمد برگزیدهش پیام می‌آورد. این برای مسیح سروش از آن هر انسانی، هر پرد انسانی، سروش رو در درون خودش دارد و بهمن خرد بنیادی در نهاد هر انسانی هست و مانند بهمن اصل ضد خشم یعنی اصل ضد قهر و خشونت و تجاوز و آذارست سروش نمی تواند فرمانی یعنی اندیشه بیاورد که بزنید و بکشید و بترسانید و ارهاب بکنید مردم را به وحشت بیندازید خوشدار بکنید این خ... اینها را نمی تواند بیارد ولی یزدان شناسی زردوشتی این تصویر اصیل سروش رو کوشید در ازهان ایرانیان نابود سازد تا همه را مطی سازد مطیع خودش سازد تا, ش... تا شاهان ساسانی بتوانند رواج دین زردوشتی رو بدهند سروش آورنده کلمات و فرمانهای احورامزا شد اصلا سروش را از را تبیید کردن به دنیای دیگر به دنیای بعد از مرگ کارشون پونکسیونشون اونجا شد گوش سرود خدا گوش سرود خدا شد یعنی چی؟ گوش سرود خرد گوش, گوش سرود خرد شد منقولات دین زر به جای سرود گوش سرود خرد منقولات شد مثل اسلام در این باره سپس به طور گسترده سخن خواهم گفت خوب دیده می شود که در فرهنگ اصیل ایران انسان نباید از هیچ کس حتی از الله اطاعت کند فرهنگ ایران بر ضد عطی الله و عطی الرسول و اول عمر منکم است این سخن که چه فرمان یددان چه فرمان شاه از ساخته های دوره ساسانی به وسیله موبدان زردشتی است که شاهان ساسانی را میخواستند دست اهورامزده برای رواج دادن دین زردشتی بکنن فرمانهای او برای حاکمیت اهورامزده اصلا فرمان معنای امر و دستور و حکم نداشته است محتویاتی که از دوره ساسانی به دست ما رسیده همه تحریف و مسخ فرهنگ اصیل ایران است اینها را علم شمردند و ماخذم شمردند ایجاد بزرگترین صد بر ضد نوزایی و رستاخیز فرهنگ ایران است. امروز اینها بزرگترین صد بر ضد نوزایی ایران شدند